دوستان آیا شما برای ساختن یک خونه آشپز استخدام می و یا از یک قصاب میخواهید که دندون شما رو معالجه کنه. به احتمال زیاد این کارو نمیکنین. این به نظر مزهک میاد با این حال ما گاهی اشتباهات مشابه این رو در کلیسا مرتکب میشیم. از به کلاس دیگه ای از دانشکده کوچکی کتاب مقدس خوش اومدین. امروز معلم ما به ما میگه که بدن مسیح کلیسا، وقتی هر کدوم از اعضا کار خودش رو به خوبی انجام میدن بهترین بازدهی رو خواهد داشت. اگه این اولین جلسه شماست که در های ما شرکت میکنین خوشحالیم که به ما ملحق شدید. چون که هرگز برای شروع مطالعه کتاب مقدس دیر نیست. ما بررسی خودمون رو از کتاب پیدایش شروع کردیم و حالا به اواخر عهد جدید رسیدیم. بیاییت حالا به معلممون گوش کنیم تا مطالعه نامه اول پتروس رو به پایان ببریم در این جلسه ما مشکلترین بخش از نامه اول پیتروس رو ملاحظه خواهیم کرد در این متن مشکل ما باید یادمون باشه که پیتروس خودش شخصا نمینوشت نوشت بلکه آنچه رو که در دل داشت با دیگران در میون میگذاشت و به اونها دیکته می کرد در هشت آیه اول پیتروس به ده موضوع عمده اشاره میکنه. در این هشت آیه او از موضوعی به موضوع دیگر می و این نشون میده که او یک نویسنده نبوده. او فقط با الهام روح القدس مکنونات قلبی خودش رو با مردم در میون می گذاشته. ببینید آیا می توانید ده موضوع امدهی رو که او در این متن مشکل به اونها پرداخته پیدا کنید یا نه؟ این سخنان در باب 3 از آیه 17 تا آیه دوم از باب 4 نوشته شده. زیرا اگر اراده خدا چنین است نیکوکار بودن و زحمت کشیدن بهتر است از بد بودن زیرا که مسیح نیز برای گناهکاران یک بار زحمت کشید یعنی عادلی برای ظالمان تا ما را نزد خدا بیاورد در حالی که به حسب جسم مرد لکن به حسب روح زنده گشت و به آن روح نیز رفت و معزه نمود به ارواحی که در زندان بودن که سابقا نافرمان بردار بودن هنگامی که حلم خدا در ایام نو انتظار میکشید کشید وقتی که کشتی بنا میشد شد که در آن جماعتی قلیل یعنی هشت نفر به آب نجات یافتند که نمونه آن یعنی تعمید اکنون ما را نجات می بخشد. نه دور کردن کسافت جسم بلکه امتحان زمیر صالح به سوی خدا به واسطه برخواستن ایسای مسیح که به آسمان رفت و به دست راست خدا هست و فرشتگان و قدرتها ها و قوات او شدند. لهذا چون مسیح به حسب جسم برای ما زحمت کشید شما نیز به همان نیت مسلح شوید زیرا آنکه به حسب جسم زحمت کشید از گناه باز داشته شده تا آنکه بعد از آن ما بقیه عمر را در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا بسر سرورد. این متن از کتاب مقدس هست که یک محقق رو هدایت کرده که بگه وقتی پولس و پتروس در آسمان ملاقات کنند پولس حرفهایی برای پتروس خواهد داشت در مورد چیزهایی که در پایان دوم پتروس نوشته شده. در پایان نامه دوم پتروس او گفته چنان که برادر حبیب ما پولس نیز بر حسب حکمتی که به داده شد به شما نوشت. و همچنین در سایر رساله های خود این چیزها را بیان می نماید. که در آنها بعضی چیزهاست که فهمیدن آنها مشکل است درک این متن بسیار سخت هست قسمت مشکل این متن اونجا هست که پتروس به ما میگه که وقتی ایسای مسیح به خاطر گناهان این دنیا مرد اگرچه بدن او مرد اما روح او زنده بود و او در روح به دیدن ارواح زندانی رفت و برای آنها موعظه کرد ارواه کسانی که نخواسته بودن وقتی فرصت داشتن به پیام نجات گوش کنند. مثلا کسانی که در زمان نوح زندگی می‌کردند اگر شما این متن رو بررسی کنید و سعی کنید بفهمید که واقعا پتروس چه چیزی تعلیم میداده عجیبه که بدونید بسیاری از محققان هم از شرح اون ناتوان هستند مارتین لوتر در یکی از تفسیرهای خودش میگه هیچ کس نمیدونه معنی این چیه دیگران سخت تلاش کردند تا این متن رو تفسیر کنند اما این متن بسیار بسیار مشکل هست. ظاهرا وقتی ایسا بر روی صلیب مرد، قبل از سعودش به آسمان، او سفری خدمتی به دنیای ارواح داشته. به قول پتروس، مسیح یک خدمت نجاه در دنیای ارواح داشته. اما در این متن، پتروس از موضوعی به موضوع دیگر میپره. قبل از هر چیز او در مورد رنج کشیدن صحبت میکنه. پتروس با رنج شروع میکنه و با رنج خاتمه میده. بعد از صحبت کردن در مورد رنجهای ما، او به های مسیح فکر میکنه وقتی به های مسیح فکر میکنه بعد از اون به این خدمتی که عیسی بین مرک و سعودش داشته فکر میکنه بعد وقتی پتروس به نوح اشاره میکنه این صحبت او رو به تعمید میکشونه و بعد از اون او در مورد تعمید صحبت میکنه او همین طور از موضوعی به موضوع دیگر میپره احتمالا تعمید قیام عیسی رو به یاد او میاره و بعد از اون او به جایگاه ابدی که امروز عیسی در اون حضور داره فکر میکنه او از موضوعی بلافاصله به موضوع دیگر میپردازه اما او به جایی که شروع کرده بود برمیگرده و صحبتش رو با رنج خاتمه میده. او چیزی رو به ما میگه که در ابتدا شروع به گفتنش کرده بود. او میگه یادتون باشه وقتی بدن شما رنج میکشه گناه قدرت خودش را از دست میده. اگر شما عمل جراحی سختی رو پشت سر گذاشته باشید و به لحاظ جسمانی رنج زیادی کشیده باشید، احتمالاً در طول دوره هرگز فکر گناهآلود یا غیر اخلاقی به ذهنتون خطور نکرده. یکی از مشکلاتی که مردان غالبا با من در میون میذارن، مشکلاتی هست که مربوط به افکار اونها میشه. من یکی از این مردان رو بعد از اینکه عمل جراحی سختی رو پشت سر گذاشته بود دیدم. اولین چیزی که او به من گفت این بود که از وقتی که به این بیمارستان اومدم، هرگز های شهوانی و غیر اخلاقی نکردم. این در واقع همون چیزی هست که پتروس اینجا میگه که وقتی ما به لحاظ جسمانی رنج میکشیم گناه قدرت خودش را از دست میده او میگه زیرا کسی که درد و رنج کشیده است، دیگر گرفتار گناه نمیشود و تا آخر عمر بر طبق اراده خدا زندگی خواهد کرد نه به هدایت شهوات نفسانی رنج موضوع اصلی نامه اول پتروس هست پتروس 14 بار در نامه اولش به رنج اشاره میکنه چون او خطاب به کسانی مینویسه که در رنج هستند. او داره به یهودیانی که مسیحی شدن مینویسه. اون یهودیانی که به عیسای مسیح به عنوان مسیحای موعود باور کرده بودند. اونها به خاطر آزارهای رومیان در آسیای صغیر پراکنده شده بودند. جفاها در روم بسیار سخت بود، جایی که پتروس این نامه را از اونجا مینویسه. پتروس میدانست که جفاها تا به دیگر ایالات هم رسیده و او می‌خواست کسانی رو که در رنج بودند آماده کنه تا رنجهای بیشتری رو تحمل کنه. رنج موضوعی هست که او این متن رو با اون شروع می‌کنه و به پایان می‌بره. پس وقتی دارید این متن مهم رو در پایان باب سه و شروع باب چهار می خونید، سرنخ رنج رو از دست ندید این یکی دیگر از متنهای زیبای اول پتروس هست این متن در باب چهار هست که از آیه هفت شروع میشه و تا آیه یازده ادامه داره اون میگه. پایان همه چیز نزدیک است. باید حواس شما جمع باشد و با هوشیاری و وقار دعا کنید. مهمتر از همه محبتتان نسبت به یکدیگر جدی و قوی باشد زیرا محبت گناهان زیادی را می پوشاند. با خوشحالی و سخاوتمندی نسبت به یکدیگر مهمان نوازی کنید. به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران به کار ببرید. مثلاً کسی که وز می میکند طوری سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آنکه خدمت میکند با قدرتی که خدا به او عطا میفرماید خدمت کند تا از این راه خدا در همه چیز به وسیله عیسی مسیح جلال یابد آری جلال و قدرت تا به ابد از آن او باد آمین اینجا ما پتروس شبان رو در بهترین وضعیتش میبینیم و او برخی نصایح حکیمانه شبانی به ما میده پتروس به اونها میگه که انتهای همه چیز نزدیک هست و در پرتو اون اونها باید چه جور مردانی باشن. اونها باید آرام خویشتندار و مردان دعا باشن. اونها باید مهمان نواز باشن. اونها باید همدیگر رو محبت کنن و یادشون باشه که محبت انبوه گناهان رو میپوشونه پتروس اینجا مانند پولس دیدگاههای جالبی در مورد عطایای روحانی به ما میده و در مورد خدماتی که از این عطاها ناشی میشه صحبت میکنه. پتروس میگه به عنوان کسی که برکات گوناگون خدا را یافته است، استعدادها و عطایای خود را برای خیریت دیگران به کار ببرید. به نظرتون این جالب نیست که همه ما عطایای یکسانی نداریم و همه ما شبیه هم نیستیم؟ آیا این جالب نیست که همه ما مثل سوسیس نیستیم که از یک خط تولید بیرون میان و همه شبیه هم هستن؟ به قول هر دوی این نویسندگان بزرگ خدا به همه ما عطایای یکسانی نداده و به همین دلیل همه ما خدمت یکسانی نداریم. پولس وقتی از عطایای روحانی و خدمت صحبت میکنه از کلمه گوناگونی استفاده میکنه. پتروس میگه فیض گوناگون باشکوه خداوند به هر کدام از ما عطایایی داده. به عنوان مباشران امین اون عطایا، عطیه شما هرچی که هست باید همون عطیه الگوی خدمت شما باشه. مباشرت تنها به پول شما مربوط نمیشه. مباشرت همینطور به چیزهای مانند اطایای روحانی و خدمت شما هم مربوط میشه. اگر اعتیاای شما معزه هست، پس معزه کنید. اگر اعتیاای شما تعلیم هست، پولس در رومیان دوازده گفته اگر خدمت کردن است باید خدمت کنیم. اگر تعلیم دادن است باید تعلیم بدهید. شما باید خودتون رو وقت اون الگوی خدمت بکنید. نظر کلی بر این هست که شما با اشتیاق خدمت و انجام هر خدمتی فروتنی خودتون رو اثبات میکنید هر کسی باید هر کاری بکنه اما این چیزی نیست که کتاب مقدس به ما تعلیم میده فکر دیگری که پتروس به ما میده وقتی به گوناگونی مهم فیض خدا در رابطه با عطایای روحانی اشاره میکنه اینه که مثلا کسی که وعز می میکند طوری سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و آنکه خدمت میکند با قدرتی که خدا به او عطا میفرماید خدمت کند تا از این راه خدا در همه چیز به وسیله عیسی مسیح جلال یابد. آری جلال قدرت تا به ابد از آن او باد آمین. تمامی تعالیم در کتاب مقدس در مورد اتایای روحانی به ما یاداوری میکنند که اتایای روحانی به خاطر بدن به یک کلیسا عطا شدند. توسط عطایای روحانی شما به من خدمت میکنید و من با عطایای روحانی خودم به شما خدمت میکنم. من فکر میکنم همه ما باید این آگاهی رو داشته باشیم هر عطیه روحانی که داریم و یا هر خدمتی که در نتیجه عطایای روحانی داریم باید از این واقعیت آگاه باشیم و اقرار کنیم که خدا منشه عطایا و خدمات ما هست و خدا قدرت پشت عطایا و خدمت ما هست هدف از عطایا و خدمت ما باید جلال خدا باشه پتروس در باب چهار رساله اولش وقتی مشاوره های شبانی خارق الادش رو به ما میده این نصیحت رو به ما میکنه وقتی که پتروس در باب چهار جلوتر میره و نصایح بیشتری در مورد رنج کشیدن میگه او به این موضوع برمیگرده و میگه ای عزیزان از آزمایش های سختی که برای امتحان شما پیش می آید تحجب نکنید و طوری رفتار ننمایید که گویی امری غیر عادی برای شما پیش آمده است در عوض از اینکه در رنج های مسیح شریک شده اید شادمان باشید تا در وقتی که جلال او ظاهر می شود شادی و خوشی شما کامل گردد خوشا به حال شما اگر به خاطر نام مسیح به شما دشنام دهند زیرا در آن صورت روح پرجلال الهی در شما ساکن است امیدوارم که شما هرگز به خاطر قتل یا دزدی یا بدکاری یا فضولی دوچار زحمت نشده باشید اما اگر به عنوان یک مسیحی رنج می بینید ناراحت نشوید بلکه برای اینکه نام مسیح را بر خود دارید خدا را شکر کنید وقت آن رسیده است که داوری فرزندان خدا شروع شود و اگر ما اولین کسانی هستیم که داوری می نصیب و عاقبت کسانی که انجیل خدا را رد کردن چه خواهد بود و اگر نجات نیکان انقدر دشوار است عاقبت گناهکاران و اشخاص دور از خدا چه خواهد بود بنابراین اگر کسی مطابق اراده خدا دوچار رنج و زحمت شده است باید جان خود را به دست آفریدگاری که همیشه به وعده های خود وفا می کند بسپارد و به نیکوکاری خود ادامه دهد اینجا کلام زیبایی در مورد رنج هست پتروس باز هم می گه اگر شما رنج می کشید ای عزیزان از آزمایش های سختی که برای امتحان شما پیش می تعجب نکنید و طوری رفتار ننمایید که گویی امری غیر عادی برای شما پیش آمده است ما فکر می کنیم که مشکلات و رنج ها مانه ما ما هستند مصیبتها و بلایا قرار نیست اتفاق بیفتند و نمیتونیم درک کنیم چرا این اتفاقات برای ما افتادند در بسیاری از نقاط دنیا مردم واقعبین‌تر هستند اونها میدونن که رنج‌ها جزئی از زندگی هستند و واقعا چیزی که بین مردم تفاوت ایجاد میکنه این نیست که آیا اونها رنج میکشند یا نه بلکه اینه که اونها چطور از عهده هاشون برمیان واقعی گرایانه ترین که امروز میبینیم تحت عنوان واقعیت درمانی هست هر کسی مشکلاتی داره مهمترین مسئله در رابطه با مشکل شما اینه که آیا شما مسئولیت مقابل با مشکلتون رو پذیرفتین یا نه یک فلسفه شناخته شده ی رایج در دنیای امروز هست که میگه ما مسئول چیزهایی که برای ما اتفاق میفته و تمام کارهایی که در حق ما انجام میشه نیستیم که بالهای ما شکسته و نمیتونیم پرواز کنیم. بنابراین این فلسفه معروف میگه که این تقصیر ما نیست. ما هیچ مسئولیتی نداریم. ما محصول محیط و گذشتهمان هستیم. ما در تمام اون تجربیات منفعل بودیم. ما نمیتونیم گذشته رو تغییر بدیم و در نتیجه هیچ کاری نمیشه انجام داد جز اینکه بیماریمان را درمان کنیم. چنین افکار و راهکارهای روانشناسی اشتباه و برخلاف اصول کتاب مقدس هستند شما مسئول خودتون هستید شما ممکن مسئول تمام چیزایی که اتفاق میافتند نباشید. اما در مورد کاری که میخواهید در رابطه با این مشکلات انجام بدید مسئول هستید مسئله اینه که برای تمام مشکلاتتون چه واکنشی نشان خواهید داد شما درخواست نکردید که به دنیا بیایید و درخواست نکردید از والدینی به دنیا بیایید که شما را به این دنیا آوردن گرچه شما مسئول به دنیا آمدنتون نیستید اما در مقابل موقعیت‌هایی که در اختیارتون قرار می‌گیره مسئول هستید. امروز انواع مختلف روی کارت‌های مشاوره‌ای هست. بسیاری از آنها روی های واقعیت درمانی هستند. یکی از اون مکاتبه واقعیت درمانی می‌گوید شما مشکلات دارید. هر کسی مشکلات داره اما شما یک سیستم ایمانی دارید. هر کسی یک سیستم ایمانی داره. مشکلات شما منتهی به عواقب احساسی نمیشه مشکلات شما توسط سیستم ایمانی شما به وجود میاد و نحوه برخورد شما با مشکلاتتون توسط سیستم ایمانی منتهی به عواقب احساسی میشن من به این روی کارت درباره مشکلات اشاره کردم چون که معتقدم این روی کرد بر تعالیم خداوند ما و رسولان تاکید داره این روی مشاوره تعالیم عهد جدید رو تایید نمی کنن. برعکس تعالیم عهد جدید این رویکردهای موقت مشاوره به مردم را تایید می‌کنند. بذارید شما را به چالش بکشم. آیا مشکلاتتون رو به عنوان مصیبت‌هایی می‌بینید که در زندگی شما جایی ندارن؟ چون شما پیرو وفادار ایسای مسیح هستید، بعد این نامه اول پتروس رو دوباره مطالعه کنید و ببینید آیا پتروس در رابطه با مشکلات با نخت نظرهای شما موافق هست یا نه. اول پتروس 4:7 میگوید. پایان همه چیز نزدیک است. باید حواس شما جمع باشد و با هوشیاری و وقار دعا کنید. در این نامه پتروس شما با چیزی مواجه میشید که من به اون توفان میگم. منظورم از طوفان یک مشکل واقعی هست. شما در زندگی های خودتون رو دارید. اما به عقیده پتروس شما کلام خدا را هم دارید. اگر پیرو ایسای مسیح هستید، کلام خدا سیستم ایمانی شما هست. شما اینگونه گونه با طوفان‌هایتون توسط کلام خدا برخورد می‌کنید. سیستم ایمانی شما بر اساس کلام خدا هست که منتهی به عواقب احساسی میشه و این چیزیه که پتروس به اون شهادت شما میگه. خدا به طوفان‌ها اجازه میده چون میخواد شما شاهدی برای او باشید. نحوه برخورد شما با طوفان زندگیتون و نحوه تعامل شما با طوفان توسط سیستم ایمانی یا کلام خدا چیزی هست که منجر به شهادت شما میشه همه ما شاهدان عیسی مسیح هستیم ما میتونیم شاهدان خوبی باشیم یا میتونیم شاهدان بسیار ضعیفی باشیم اما همه ما شاهدان او هستیم یکی از چیزهایی که نوع شاهد بودن ما رو تعیین میکنه نحوه برخورد و تعامل ما با توفانهای زندگی توسط سیستم ایمانی هست که داریم که بر اساس کلام خدا هست این ما رو به سمتی میبره که شاهدانی قوی برای مسیح در این دنیا باشیم وقتی که پتروس توفانهایی رو که این مردم در ایالات آسیای صغیر با تحمل رنج از اونها عبور میکردند توضیح میده میگه که اونها توسط سیستم ایمانی یک پیرو وفادار مسیح با این ها مواجه میشن در این میان پتروس چیزهای جالبی در رابطه با رنج به ما میگه در این ایامی که الهیات کامیابی رواج داره ما واقعا نیاز داریم که این رو بشنویم پتروس به پیروان وفادار مسیح میگه گوش کنید رنج کشیدن یک دعوت هست عیسی رنج کشید شما به خاطر اینکه او رنج کشید نجات یافتید از شما دعوت شده که به دنبال قدم های او بروید رنج کشیدن برای شما یک دعوت هست در واقع پتروس میگه در عوض از اینکه در رنج های مسیح شریک شده اید شادمان باشید تا در وقتی که جلال او ظاهر می شود شادی و خوشی شما کامل گردد آیا زمانی ای رو که شاول ترسوسی مسیح قیام کرده رو در راه دمشق ملاقات کرد به خاطر میاری؟ شاول مشغول آزار دادن به کلیساها بود از این رو مسیح قیام کرده از او پرسید چرا به من جفا میکنی؟ وقتی کلیسا تحت جفا قرار داشت در واقع مسیح تحت جفا بود چون که او توسط کلیسا و در کلیسا زندگی میکنه و خودش رو ظاهر میکنه خب به خاطر رنج کشیدن این ایمانداران که در ایالات آسریا صغیر جفاها رو تجربه می کردن پتروس داشت می این مسیح هست که رنج می کشد. این مسیح هست که دنیا به او جفا می کند. شما با او شناخته میشوید شوید بنابراین شریک رنجهای او هستید اما دنیا از او نفرت داره دنیا او رو رد میکنه دنیا با او دشمنی میکنه بنابراین پتروس در راستای دیگر آیات کتاب مقدس میگه. اگر شما زندگی خدا ای در مسیح داشته باشید، مورد جفا قرار خواهید گرفت. رنج کشیدن یک خاندگی هست و شما نمونه ای مثل مسیح برای پیروی دارید. وقتی در رنج خودتون از مسیح پیروی می کنید، شریک رنج های او میشوید. پطرس میگوید وقتی رنج میکشید شاد باشید که به این طریق می در رنج و زحمت مسیح شریک شوید. به این ترتیب در روز بازگشت پرجلال او، شادی شما کامل خواهد شد اگر به خاطر مسیحی بودن شما را دشنام دهند و نفرین کنند شاد باشید زیرا در این صورت گرمی روح پرجلال خدا را احساس خواهید کرد که وجود شما را فرا میگیرند پتروس داره میگه اگر شما بر حسب اراده خدا رنج میکشید حالا اینجای بحث داره بعضی ها میگن خدا هرگز نمیخواد قومش رنج بکشه به طور خلاصه پتروس به وضوح در سرتاسر سر این متن میگه. اگر به خاطر مسیحی بودن شما را دشنام دهند و نفرین کنند شاد باشید زیرا در این صورت گرمی روح پرجلال خدا را احساس خواهید کرد که وجود شما را فرا می‌گیرد اما مراقب باشید کسی از شما به جرم قتل دزدی خرابکاری و یا دخالت در زندگی دیگران رنج و زحمت نبیند اما اگر به علت مسیحی بودن مورد آزار و اذیت قرار میگیرید، شرمگین نشوید بلکه افتخار کنید که نام مسیح بر شماست و خدا را به خاطر آن شکر گویی زیرا زمان داوری فرا رسیده است و ابتدا فرزندان خدا داوری خواهند شد پس اگر ما که فرزندان خدا هستیم مورد داوری قرار خواهیم گرفت چه سرنوشت هولناکی در انتظار کسانی است که به انجیل خداوند ایمان نیاورده و اگر اشخاص درست کار به زحمت نجات خواهند یافت بر سر بیدینان و گناهکاران چه خواهد آمد بنابراین اگر به خواست خدا دچار رنج و زحمتی میشوید اشکالی ندارد. به کارهای خوب خود ادامه دهید و به خدا اعتماد کنید که خالق شماست. زیرا او هرگز شما را رها نخواهد نمود. جلال و قدرت تا به عبد از آن اوست، آمین. این متن زیبایی در رابطه با رنجها هست. سخن پایانی پتروس در باب پنج خطاب به رهبران کلیسا نوشته شده. این یکی از متنهای مورد علاقه من که در جلسات رهبری از اون استفاده میکنم. اگر شما رهبر کلیسا هستید یا یک رهبر روحانی هستید، اگر یک شبان هستید و یا اگر یک مراقب برای قوم خدا در کلیسا هستید، لازمه به سخنان پایانی پتروس خطاب به کلیسا نگاه کنید. اولا پتروس خطاب به شبانان این میگه. من که یک رهبر کلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم و در آن جلال که قرار است به زودی ظاهر شود شریک و سهیم خواهم بود. فکر میکنم این زیبا هست. پتروس خودش رو به عنوان فردی بالاتر و برتر از همه در کلیسا نمیبینه. او واقعا خودش رو در مقام اول نمیبینه. او رهبری در بین رهبران دیگر هست. پتروس وقتی باب پنج رو می نویسه بسیار فروتن هست. وقتی ما به سنامه پتروس در مقدمه نوشته های او نگاه میکنیم، میفهمیم او این بار چرا فروتن هست. اما حالا پتروس داره خطاب به مشایخ کلیسا می نویسه که اونها باید مسئولیت شبانی کلیسا رو نه به عنوان اربابان بلکه به عنوان الگوهایی به جا بیارند وقتی شما تعالیم رهبری کلیسا رو مطالعه میکنید به این نتیجه میرسید مخصوصا در پرتو متن‌های مانند اول پتروس 5 میبینید که هیچ چیزی در این دنیا نیست که با کلیسا به عنوان یک سازمان قابل مقایسه باشه در ظاهر محلی و قابل رؤیت اون کلیسا یک سازمان هست کلیسا میتونه تبدیل به شغلی بزرگ بشه به این معنی که کارهای تجاری زیادی انجام بده در کلیسای محلی که ما مسئولیت نظارت بر کلیسا رو داریم روشهای نظارت بر کلیسا رو از کجا به دست میاریم وقتی ما وارد داد و ستت‌های کلیسا میشیم من معتقدم که امروزه ما یک گزینه داریم ما میتونیم سمیناری در رابطه با این برگزار کنیم که چگونه یک مجری موثری باشیم ما میتونیم یاد بگیریم تجزیه تحلیل کنیم سازماندهی کنیم نمایندگی بدیم، رسیدگی کنیم. ما میتونیم بهترین روشهای دنیا رو به کار بگیریم. چنانکه گویی داریم سخت افزار و نرمافزار افزار پیچیده کامپیوتر میفروشیم میتونیم از همون روشهایی که دنیا برای فروش و مدیریت بازرگانی استفاده میکنه بهره بگیریم. ما میتونیم روشهای مدیریت دنیا رو وارد کلیسا بکنیم. وقتی این کارها را انجام میدیم، مردی که به او شبان میگیم، دیگه نمیتونه یک مرد خدا باشه. یا یک کاهن یا یک نبی باشه که نگران جان مردم هست او میتونه تبدیل به مدیر جوان پیشرفت کنندهی باشه که رئیسش نگران شخصیت او هست این میتونه در کلیسای محلی پیش بیاد در نهایت شرمساری باید بگم من در اون عرصه تجربیاتی دارم کلیسای محلی در رابطه با سازماندهی اصولش باید چگونه باشه من باید تاکید کنم که کلیسا یک کشتی جنگی نیست. و شما نباید کلیسا را با چنین طرز فکری اداره کنید شما نباید مردم را وادار کنید که وقتی برای دادن گزارشاتشون میان به شما سلام نظامی بدن کلیسا چنین جایی نیست امروزه در مدیریت خدمت شبانی کلیسا مردانی هستند که مدیران اجرایی بسیار موفقی هستند اونها میل دارند که کلیسا را مثل یک تجارت اداره بکنن کلیسا نباید مثل یک شرکت بازرگانی با یک مدیر و مالکان و کارمندان داره بشه کلیسا نباید چنین جایی بشه اگر میخواهید فلسفه رهبری عیسی رو بدونید متا باب 23 رو بخونید من فکر میکنم که پتروس اینجا در اول پتروس باب 5 میگه آقایان کلیسا تجارت نیست و شما نباید اون رو مثل یک شغل ببینید شما نباید مانند یک ارباب بر اون نظارت کنید بلکه باید نمونه باشی تنها تأثیری که مشایخ و شبانها در کلیسا دارند نمونه بودن اونها هست. اگر این سرمشق بر دیگران تاثیر بذاره، اونها پیش او خواهند اومد و به نسایح اونها گوش خواهند کرد و خواهند پذیرفت چون به اون شبان نمونه احترام قائلن. اگر اونها بدونن زندگی او اونطور که باید باشه نیست، اگر اونها بدونن که او فساد اخلاقی داره، آیا فکر میکنید اونها به مشورتهای او علاقه نشون میدن اونا هرگز اهمیت نمیدن که مشاوره های اوچی هست و از او پیروی نمیکنند. این نمونه ای از تأثیری هست که شبانان بر کلیسا دارند نه اقتداری مانند یک فرمانده نظامی یا مدیر یک شرکت تجاری پطرس توسط عیسی تعلیم یافته بود که می میگفت اما شما نباید استاد خوانده شوید زیرا شما یک استاد دارید و همه شما برادر هستید هیچ کس را بر روی زمین پدر نخوانید زیرا شما یک پدر دارید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 اجازه ندید کسی شما را استاد یا پدر یا رهبر خطاب کنه. چون که شما یک استاد دارید، یک پدر دارید و یک رهبر دارید و اون خدای پدر روح القدس و مسیح است. همه شما برادر هستید. شما باید زیر این کلمات خط بکشید. همه شما برادرید. شما میتونید تعم این رو وقتی پتروس باب پنجم اول پتروس رو می نویسه احساس کنید. پتروس کسی نیست که بالاتر از همه باشه و بقیه زیر دست او باشند. پتروس کسی نیست با اون چیزی که امروزه بهش اقتدار رسالت میگیم که درخواست بکنه دیگران باید تسلیم اقتدار او بشن. من گاهی وقتی متنای را میخونم که فروتنی رو به ما تعلیم میده و میفهمم که فروتنی چیه، تجرب میکنم چطور ما میتونیم به این جایگاه برسیم در حالی که مراتبی مثل اسقف، اسقف اعظم و غیره داریم که بسیار مخترم هستند و غیره و قیده. اونا سعی میکنند به رهبران جایگاهی بدن که نشون بدن چقدر رهبر والا مقامی هست. برادران من، برادران عزیز، این تعلیم کتاب مقدسی نیست. این از روح القدس نیست. این از عیسی مسیح نیست. وقتی ما به تعالیم رهبری کلیسا از کتاب مقدس نگاه کنیم، من معتقدم که خواهیم فهمید اونجا چیزی به نام سروری بر مردم وجود نداره. یکی از مشایخ هست که به مشایخ دیگر می نویسه. همه اونها جزء مشایخ هستند، همه اونها برادر هستند و یک استاد دارند. اونها یک معلم و یک رهبر دارند. اون رهبر خدا هست، اون رهبر روح القدس هست و اون رهبر خداوند عیسی مسیح هست. در پایان باب پنج، پتروس آیه بزرگی به ما میده. اون آیه مثل مروری کلی بر سه سنامه پتروس هست که میگه اما پس از این که اندک زمانی رنج و زحمت دیدید خدا که بخشنده تمام برکات روحانی هست و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید شما را کامل، ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. این چیزی بود که برای پتروس اتفاق افتاد. بعد از اینکه که پتروس رنج کشید، خدا پتروس رو کامل یا بالغ کرد. خدا پتروس رو بنا کرد. خدا پتروس رو تقویت کرد. خدا پتروس رو تعیین کرد و این پتروسی هست که کلمات اول پتروس باب پنج رو مینویسه بذارید توضیح بدم بعد از اینکه مدتی رنج کشیدید خدای ما که پر از مهربانی توسط مسیح است جلال ابدی خودش رو به شما خواهد داد او شخصا خواهد آمد و شما رو در جایی که هستید استوار خواهد کرد و بعد از اون شما را رو هر روز قویتر خواهد کرد من معتقدم که این داستان زندگی پتروس هست. وقتی پتروسون رو با اون جماعت در میون می‌ذاره کلمات پایانی او باز هم به موضوع رنج کشیدن برمیگرده به عبارت دیگه پتروس میگه دلیل بعضی از رنج ها این هست خدا میخواد شما رو رشد بده بنابراین این فاجعه این مصیبت که شما امروز از اون عبور میکنید، دقیقا معنیش این هست که بعد از مدتی خدا خواهد اومد و شما رو خواهد برداشت و در جایی قرار خواهد داد و شما رو تقویت خواهد کرد و شما قویتر از هر زمان دیگری خواهید شد چونکه شما از این تجربیات رنج عبور کرده اید پتروس در نامه اولش بارها و بارها سعی میکنه به ما بگه هدف از رنج کشیدن چی هست اگر شما الان از طوفان عبور نمیکنید عبور خواهید کرد یادتون باشه که عیسی میگه این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید در جهان رنج و زحمت خواهید داشت ولی شجاع باشید زیرا من بر دنیا چیره شدم سؤال اینه که شما چطور به این توفانها واکنش نشون خواهید داد؟ این نامه عملی اول پتروس رو مطالعه کنید و از خدا بخواهید به شما کمک کنه که در میانه توفانها واکنشی شایسته نشون بدید. عزیزان خدا رو شکر میکنیم به خاطر چنین کلامه تشفیق کننده ای. اگر آن در رنج هستین، این کتاب میتونه تسلی بزرگی برای شما باشه که واکنش درست نشون بدید. اگه شما در رنج نیستین، برای برادران و خواهرانی دعا کنید که در رنج و جفای عظیم و طوفان‌های وحشتناکی هستند. تا برنامه بعدی باشه که خدای امید ما قلب شما رو با شادی و آرامش پر کنه و تا به او اعتماد کنید و با قدرت روح القدس سرشار از امید بشید. امیدوارم خدا به شما کمک کنه حقایق این کتاب رو در زندگی و در کلیساتون به کار بگیرید. در جلسه آینده نامه دوم پتروس رو بررسی خواهیم کرد. شما را تشویق می‌کنم از دوستانتونم هم دعوت کنید تا در مطالعه کلام خدا در دانشکده کوچک کتاب مقدس به ما بپیوندند.